بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و والسلام على اشرف الانبیاء وسيد سيد المرسلین و اهلی اجمعین اما بعد بحث بلا و برا فقط دستا محل شاهد از آیات در بحث معنی بلا و همشنون برا تغاظه کرد که دوباره یک اشاره کوچیکی بشه تا بریم به درس امروز ما دو تا آیه اشاره کردیم که در کلم در تعریف از کلمه ولا در شرع اومده در قرآن اومده ما گفتیم ولا خودش دوستی هست خود ولا در لغت عرب انما کم الله ولی ما کسی که ما دوستش داریم و اون ما رو, ما رو دوست داریم ما مؤمن رو دوست داره خدابنده متقابله این ولی به معنای دوستی هست این دوستی لازمش مودتا هست محبتم هست اصلا محبت که همون دوستی هست دوست داشتن است یکی فرموده خداوند هست که در قرآن که در شأن نزول در یا سبب نزولش خاتم به بکر که خداوند میگه یا الذین آمنو لا تتخذوا عدو و عداوکم اولیاء تلقون اليهم بالموده گفتم فاز این یک بحث دنیوی بود خاص خانواده خودش رجا بده نه اینکه هدفش این نبود که کفار را بر علیه مسلمانان نصرت بده هدفش دشمنی با اسلام نبود اسلام را دوست داشت بلکه به خاطر امر امر دنیوی اومده بود همکاری کرده بود با مشرکین اشتباه حاطه بود به خاطر همین خداوند او را بخشید و رسول الله صلی الله علیه و سلم این بخشش خدا را ابلاغ کرد به صحابه وما ادراك ما لعل الله يطلع على قلوب اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفر الله لكم هر عمل الدسريد انجام بيي خلاص شنو راك بخيده ويا ممكن خد شركه اكبر لو ببشه ان الله لا يضر أن يشرك به شركه اكبر لو هي تلاقونا مباشره بس شركي شود شنو شركي بود شرك اصغر بود كرا بخاطر دوستيش ومودت وخو گرفتن با يا همكاري كردن با مشركين چه موقع این مبالا تبدیل به کفر اکبر میشه وقتی که تولی درش بیاد وقتی که دشمنی با اسلام یا نصرت دادن کفار بر مسلمان ها باشه بیاد بر علیه اسلام صحبت بکنه بر علیه خداوند بر علیه پیغمبرش علیه صافر و السلام بر علیه دین اسلام اینها چه صحبت بخواد بکنه چه بخواد همکاری بکنه با کفار بر علیه اسلام اینا جز نواقض اسلامه شرکه اکبر و کفر اکبره. اما آیهایی که اشاره به بحث محبت میکنه، اینکه لازمیه ولیا. دوست داشتن هست. مودی خداوند یا ایهاللین آمنوا لا تتخذوا آباءكم و اخوانكم اولیا. جو بحث بزن بحث اولیا بودنه. بعد بعد از همین آیه میگید کل اینکه آباءكم و ابناء و ابناءكم و اخوانكم و ازواجكم و عشیرتكم و همچون نکت رفتموها و تجارتنتخشون کسادها و مساکنو. ترضونها احب اليكم احب الیکم. ها اگر محبوب تر باشند نزد شما از کی من الله و رسوله از الله و رسولش پس بحث بحث دوست داشتنه دوست داشتن امر دنیوی این موالات موالات از دوست داشتنه و یا همون محبت و مبدت خو گرفتن و انس گرفتن با کفار اما برا برا برا اجستن یعنی ما عنوان م... یک مؤمن ما گفتیم وظیفمون هست که ولا و نسبت به دین اسلام داشته باشیم اسلاممون خدا و دینش و پیغمبرش و صحابش و دیگر مؤمنین رو باید دوست داشته باشیم لازم ایمان این ولا هست یک مؤمن وزیفه است. همون که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرماید المسلم و اخو المسلم یا لا یظلمه ولا یسلمه نه بهش ظلم میکنه نه ترکش میکنه رهاش میکنه یعنی چی؟ یعنی اگر جای اون مسلم مسلمان نیاز داشت که نصرتش برید وظیفت نصرتش برید لازمه این محبت این ولا دوست داشتن مبدت هست که ما الا در مقابلشون چون بخاطر اینکه بحث تحقیق تف بشه ولا و برایمون چون الله نباید به خاطر الله نباد مشرکین باشه نباید به اهل شک باشه این ولا خاص خاص خدا بنده هرگاه شراکت اومد در این ولا اینجا هست که ایمان خشه دار میشه یا شرک اکبره یا شرک اصغر که دو تا صورتش ما گفتیم ولا نسبت به کفار و ولا نسبت به شرک و کفر اما اون بلایی که خداوند از ما میخواد نسبت به مسلمان نسبت به خداوند نسبت به پیغمبرش بحث نصرت دادن و بحث دوست داشتن ما آیه اشاره کردیم در جلسه گذشته فطخانه لکم اسوته حسنه فی ابراهیم و الذین معه اذ قال لقومه انا برقا. این یک مسلمانه بری بشه از چی از مشرکین إن براءو منكم وما ممتعبدون أهزمشركين أشركشون إن براءو منكم وما ممتعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء عداوة والبغضاء كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء اللهم إيب الله برآب خطر الخدا إنك براءت بجئي أهزمشركين به اهل شرک یا هم مشکی یا هم اهل شر و شرکشون براءت بجویم و لازمه این براءت بغض آنها هست دشمنی با آنها هست حالا اگر این قضیه معکوس بشه این همین ولا براءت معکوس بشه اینجا هست که ایمان ما خچه دار میشه یعنی مثلا ما بغض یک مسلمان داشته باشیم خلاف ولا براءت هست ما قلت يا أرثق وغير الإيمان الحب في الله والبغض في الله ما بغضاش نسبت نسبة بأي مؤمن بأندازية معثياتش نبذاتش بغض نسبيه انصر أخاك ظالمان أو مظلومة وزيفة من نصر دادن يج مسلمون مظلوم باش صحابه قلتن ما ميدونين ظالم شو تور نصر تشبدين رسول الله صلى الله عليه وسلم در توزيه قدرين ميجان ك مانعش بشي كزول نکنه تغيان نکنه مانع شدن از زن این نصرت یک مؤمنه نذاریم که در گناه بیفته نصیحتش رو کنیم پس بلا دوست داشتن و مبدت که باید خواست خدا باشه نباید شریک به خدا در این دوست داشتن قرار بدیم و به خاطر این دوست داشتنمون به الله نباید مشرک و اهل شک را دوست داشته باشیم الگوی ما, ما هم کی هست ابراهیم علیه السلام وقتی که اعلان کرد، کد بغاطر ولاش نسبت به الله و لازمه ایمان ما که دوست داشتن دوست داشتن خداوند هست و عدم دوست داشتن غیر از خدا از مشرکین اهل شرک و شرکشون براعت جستن و بغض داشتن براعت دوری هست دوری جستن و براعت جستن از شرک و اهل شرکه دوری وجویم غیر از دوری جستن بغضم درش هست دشمنی هم هست همونطور که ابراهیم در در این آیه ما گفتیم و بد بیننا و بینکم عداوه و البغضاء عداوت دشمنی به خاطر چی به خاطر محبتی که نسبت به الله داریم حب الله و بغض البته فقط برای مؤمنه اما برای کفار دیگه نه بغضشون داریم دشمنی با آنها داریم اگر قرار باشه در سفک مشلکین پدرمون بیصه برادرمون بیصه با اونم می‌جنگی تقدیم محبت الله و رسولش و مؤمنین بر محبت پدر و مادر و هر کسی دیگه میخواد باشه مؤمن مظلوم واقع میشه در اون طرف مقابل پدرت هست ظالمه وظیفه‌ت که حقتی دستتی رو بگیری دست اون مسلمان مؤمن رو بگیری این ولابراه هست برا حب الله است و بغض الله است. مثلا که انسان طبیعت اصلا چیز دیگه میگه. ولی که فرموده رسول الله صلی الله علیه و آله انصر اینجا کار داره. کسی مشکل داره در قضیه ولا برا. این قسمت که واضحه. پس ولا برا, برا برای الله و هیچ شریکی در این ولا برا نباید برای خدا قائل بشین. باید ولایمون خاص خداوند و مؤمنین و پیغمبرش باشه برایت باید خاص کی باشه؟ برایت مطلق خاص مشرکی اهل شرک باید باشه و شرک اونها برایت بجوییم یعنی دوری بجوییم نه از مؤمنین فشم مؤمنین بریم دست مؤمن رو نگیریم این خلاف ولای برای اون چیزی که است که خدا, از خدا و پیغمبرشون محمد صلی الله علیه و ازم مقصد خب إن بحث بلاه برابر بيني بحث إبرو زمون. مال ليش فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل معرفة العبد ربه. أجار بيت بجان. إن ثلاثة الأصول. إن ستأثريك ما باد بدينم كي هس. أولاً كلمة أث. بريشة يكشيء طويل يكشيء شالدي يكشيء بيش ميقول أث. چلو مثلا ساختمان این مثلا اتاق که ساخته شده به شالدهش میگن اصل مثالش هم در قران دارین علمت کیفه؟ ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت اصلها ثابت و فرعها في السماء شاخو برگاشون در آسمانه این اصله چرا اصله این تا اصل منمش شناخت خداوند و دینش و پیغمبرش چرا اصله به خاطر اینکه ما در قبر ازش سوال میشیم اولین جایی که ما در دنیای آخرت در برزخ داریم قبره منکر و نکیه بر سر ما میایسن و میپرسن پروردگارت کیست پس اهمیت بالایی بر قدر هست این قضیه این شناخت این علم علم خداشناسی و خداپرستی مل اصول ثلاثه التي يجب على الانسان معرفتها واجب بر هر مسلمان میدونه به خاطر اینکه سوال میشه در قبر بر اساس اون دیگه مشخص میشه اصحاب جهنم یا اصحاب بهشت. پس برای نجاتش از جهنم عذاب قبل باید بدونه خداش رو باید بشنس شناخت این الواجبه فقل معرفة العبد ربه اینجا گفت فقل معرفة العبد ربه ما گفتیم رب کلمه رب از بیاد رب کسی که می پر پروردگار میگیم لغت فرسی. و کلمه روبوبیت مشتق شده از کلمه غرب یعنی ایمان به این که خداوند خالقه و رازقه تدبیر امور خلق و آفرینش را به آهده گرفته یک تا قرار بدیم در خلق آفرینشش یعنی در هم بحث خداشناسی خب الان آیا ما سوال میشیم در قبل که خدا را شناختیم یا نشناختیم یا که خدا را پرستید یا نپرستیدین کدوم دو تا سوال میشین آیا اگر کسی خدا را بشناسه، نصیر به میخوره در قبل خدا به درد میخوره ابو جل و دیگران از سران که قرش که میدانستن خدایی هست به دردش میخوره قل من ما فی السماوات والارض، الارض قولون نه الله الله را قبول لشن بل و نرد ولی که خدا دردشو نپذیرفت خب پس اگر از اونها پذیرفته نمیشه پس چرا داره منکرونکی داره میپرسن که پروردگار تیست؟ شما یک مسئله خوندید در بحث ایمان کلمه ایمان و کلمه اسلام دوتا کلمهی مثل کلمه فقر و مسکین. فقیر و مسکین اگر با هم جمع بشن چی میشه؟ معانیشون؟ جدا میشه اسلام میشه ارکان ظاهر و ایمان میشه اعمال باطنی مسکین و فقیر فقیر کسی هیچی نداره مسکین کسی یکم چیزی داره اگر به تنهایی بیان معنای یکدیگر را در بر میگیرن مسکین فقیر رو در بر میگیره فقیر مسکین رو در بر میگیره اگر خداوند گفت یا ای الذین آمنوا مسلمان هم شامل میشن اعرا هم شامل میشن اگر خطاب مسلمان ها کرد مؤمنین هم شامل میشن دو تا کلمه مترادف اگر به تکی بیان اما اگر در یک جمله بیان معنی دیگری پیدا میکنن مثل فرموده خداون خالت العراب آمن قل لم تؤمنو ولكن قولو اسلمنا. نم عراب گفتن ما ایمان داریم خدا گفت نگید ما ایمان داریم بگید ما مسلمانی یعنی چی؟ یعنی که بگید که ما در ظاهر اسلامی مسلمانیم. اعمال ظاهری رو انجام میدیم ولی هنوز ایمان در قلب انها جا. نگرفته. ایمان میشه اعمال باطنی قلبی اینجا کلمه رب هم همینطور به تنهایی اومده معنای علوهیت هم دربر میگیره شما شایی شما سوال, سوال بپرسه دلیلتون چیه؟ بر این که اینجا تلمه رب عبودیت را هم دربر میگیره فرموزه خداوند در قرآن است که میگوید لذلك لا يمكن أن يكون هناك نصراء اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله علماء ما رأب؟ أرباب قرار دادان عديب نحاكمتها كيف ترمزيها في البنية؟ حديث التاسيم يقول وما دنازل رسول الله قال يا رسول ما اتخذناهم أربابا ما هو رب قررنا ندري رسول الله صلى الله عليه وسلم أوليس إذا حللوا ما حرم الله حللتم حللوا ما حرم الله حللتم اگر اون چیزی الله حرام کرده بود اونها حلال میکردن شما حلال نمیکردید گفت آری و همین همین برات قالت تلك عبادتهم تعریف از رب قرار دادن این ارباب را رسول چیکار چی تعبیر میکنه بعبودیت بهالوهیت به پرستش قالت عبادتهم این عبادت اونها هست پس ارباب قرار دادن، از باب لزوم چی رو دربار می گیره؟ یک تا قرار دادن خداوند در خرق آفرینش لازم لازم لازمش پرستشه. روبیت معنای الوهیت رو دربار میگیره از باب تلازم، یعنی لزوم هم دیگرند. یعنی وقتی خداوند بحث از آفرینش رو خلقش میکنه از باب اتمام حجت. عزبابكم محجات يعني اللازمية اعتراف شما بإنت من خالقهم چيه؟ كما رو يا أيها الناس اعبودوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم اعبودوا چرا عبودت بكنام؟ شو خدا من شوانا وفريده شو خدا خالق خالقه بشما قبول ده خدا قالته فس تلازم بین ان دوتا بقاطر همين اینجا وقتی که ما در قرب خوابنده میشیم سوال میشیم از پروردگارمون پس باید بدونیم این پروردگارمون چه خصوصیت هایی داره پروردگارمون کسی هست که خالقه آفریننده هست و لازمه این اعتراف عبودیت و سر به سجده گذاشتنه همونطور که در این آیه که تلاوت کردیم در سوری بقره اومده بحث گفتیم روبوبیت و اولویت یا توشید علمی و توشید عملی ما قبلا شاید بازم دوباره میگیم توشید علمی این که همون به تعبیر خودمون به فارسی میگیم خداشناسی تا قرار دادن خداوند در اسماش و صفاتش و افعالش این توشید علمی یک تا قرارش بدین توشید عملی بعد میگرده به افعال بنده ما در اعمال خودمون نسبت به خداوند خدا, خدا رو یکتا قرار بدیم خالصانه خدا رو بپرسیم اعمال عبادتمون رو فقط خالصانه برای خدا قرار بدیم خب پس پله اول اون چیزی که م... یک شخص مؤمن باید بدونه خداشناسی است تا اینکه خداپرستی هم بیاد تو وقتی خداشناسی نیاد خداپرستی هم نمیاد شاید برای خیلی این مسئله بدیهی باشه ولی بعضی ها مریض قلب باشن میگن دلیل بر اینکه من باید خدا را بشناسن دلیل بر خداشناسی اینکه خدا یک تاست چیه قبلا ما یک قاعده کلی گفتیم یک فرمول گفتیم اگر یایتون باشه ام خلقون من غیرشین ام همول خالقون که خداوند باب الزام میگه که آیا احتمال داره خالقی نباشه؟ نه یا که ما خودمون خالق خودمون باشیم بازم نمیگه چرا چون ما از خودمون اراده نداشتیم باید خالقی باشه اما این خالق کیه چطور میتونیم بهش پی بی ببریم با توجه به ادله شرعی. شرعی و ادله کونی ادله شرعی و ادله کونی این دو تا وسیله هست خداوند در اختیار ما قرار داده میگه به خدا برسید أدن لكي يكونيه خضباً إشارة القرآن زياد ميكونة ولم ينظر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء نقول هذا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب آيات إجابة اختلاف شوان الروس إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفعون الناس وما أنزل الله من السماء من ماء في به الأرض نشانه ها رو خداوند تکرار می کنه. اختلاف شب و روز کشتی که روی آب ایستاده خداوند گذاشته مسخرش کرده که زیر آب نره به خاطر منفعتی که برای ما توش هست آبی که از آسمان می و درخت می رویند، اینها همه نشانه ها هستن نشانه های خلق و آفرینش بروجود خدا که خدا این ها رو مثال می که اینها آیا احتمال داره که بدون مسببی باشه بدون جهد دهندهی باشه یعنی اون آبی که از آسمان میاد بعد اون سرزمین خوش مثل الان شما بدید سهرابیابون نگاه بکنید کرد. چرا تا یک ماه دیگه دو ماه دیگه سرسبز میشن رنگ زمین عوض میشه بحث چرخش زمین دور خودش چرخش خورشید. آیات کونیه دیگه کی این زمین رو در فضا نگه داشته و کی این زمین داره میچرخونه دور خودش غیر از خداوندر رحمان که لفت در, در حق ما کسی دیگر قرشید و ماه و ستاره و اینها رو نگه نداشته در آسمان. خدا اینها را مسخر کرده. نگه داشته در آسمان. و داره میچرخونه ماه را داره میچرخونه به خاطر که زمان را دست ندیم. زمان وقت ماه را بدونیم. زمان اینکه بتونیم خدا را بپرسیم. وگرنه خیلی از عبادت ها مثل رمزان که معنا میشه به نفع ماست این زمانی ای که خدا من گذاشته اینا آیات کونی هن. ما خودش خرشید زمین کهکشان ها این ستاره هایی که در آسمان می بینیم و فی انفرست کنم افلاتو بسرون در نفس ما خودمونی غذایی که میخوریم هز میشه این چشمی که این پلکا ها داره به هم میخوره زیرش آب هست این آبی که تا افتاد درجه سانتیگراد زیر صفر یخ نمیبنده بنده ها عاجز از این چینین آبی را درست بکنن شاید اندازه این مدرسه دزگاه و تک و تشکیلات بیارن تا یه چینین آبی که این چش راحت این پلک راحت بسته بشه روی چش نکنید این خلق یک بدن جسمی مثل یک متر و شخص افتان بشر نیست کلیه و معده توش هست راحت این آب را تولید میکنن. ولی بشر بخواد این آب را تولید بکنه باید یه کارخانه اندازه این مدرسه بسازه با هزار تا تک و تشکیلات ملیاردها هزینه مفت مجانی خدا داری می سازه تولید میکنه کنه یک سره داره تولید میشه شه نمی خوش نمیشه اگه خوش رزنه دیگه کور می شید. این نشانه چیه خلق که دراز بر خالق داره دقت آفرینش از این چش گرفته از این مورد های چش و از این عدته چش کدوم پزشکی کدام شرکت شیشه سازی میتونه عدته مثل عدته چش درست بکنه این مگاپیکسل هایی که میاد مثلا موبایل ده مگاپیکسل از وقتی که شروع شده یک مگاپیکسل و دو، سه، چار، پنج، شیش، ده میرسه بعد فلان شرکت رو دست اون میزنه بیس مگاپیکسل این همه افتخار میکنن توقع دارید چشم شما چند مگاپیکسل پیسل قابل تخیل نیست اینقدر دقیق داره اینقدر دقیق داره اینقدر سلول ها دارن روزانه تجدید میشن مثل یک عینک شیشه نیست که کنه بشه دارن تجدید میشن روزانه ملیون ها سلول سلول این چشم این عدسه چشم دارن عوض میشن ملیون ها سلول نه یک سلول غربی خودشان توش مونده. چه خلقی هست چه آفر میشه هست چه جسمی هست با این دقت، چطور خداوند مسخر کرده در این جسم این آیات خداونده برای چی؟ لآیات لعول الالباب برای اونهایی که عقل دارن خرد دارن خردمندن برای عاقلینه نه برای نفهم ها پس فهم داشته باشید ای ها شعور داشته باشید سر به سجده خدا بزنید این خلق خداست این نشانه های خداست از وا به چی لزوم وقتی خداوند دقت خلق آفرینشش به روح ما میکشونه به خاطر چی چرا این مننه رو بر سر ما میذاره خاطر که سر به سجده در در بیاریم به خاطر اینکه او را بفرست زیاد از نشانه های خداوند ما نمیتونیم اینجا از آفرینش خداستم بحث بکنیم از اون خورشیدش که این انرژی رو از خجا میاره و این بارهای مغناطیسی که تولید میکنه این عبری که خداوند در آسمان نگه داشته و او را با سرعتی میچرخونه اون هوایی که از خود به شمال و جنوب میاد عوض میشه سرما و گرما عوض میشن چرخش زمین چرخش ابرها فرود آبندن باران با یک سرعت خاصی با یک مقدار خاصی ب... ب... به خاطر اینکه عذاب نشه درد نشه تهدید نشه وعید نشه سبحان الله اگر این آبها قطره آبها کمی سرما بهش بکوره یخ میزنه سنگ بارون میاد سگ بارون که بیاد دیگه شیشه ها شکسته میشه شاید انسانم ببینه سنگی از صدا پرت بشه بر سر آدم بر خداوند انسانو حفظ میکنه قبل از اینکه تبدیل به سنگ بارون بشه عذاب بشه تبدیل برفش میکنه تا راحت تپوق بر سر ما اینا نشانه دقت خلق آفرینش نیست نشانه دقت خلق آفرینشه. اون آبی که تبخیر میشه میره بالا همه اینها نشانه های خلق آفرینش خداونده اما آیات شرعی خداوند که خطام بحث امروزمون هست پس گفتیم خدا را باید بشناسیم با عدله کنیش اما عدله شرعیش عدلی شرعیش زیاده خداوند. مثل نماز روزه، که حکمتهای درش نهفته از ما نمیدونیم. یا قوانینی که خدا شرع کرده. و نهایت عدل و انصاف درش هست. زنا را حرام کرده. به خاطرشی اختلاط انصاف پیش نیاد. ناموس شکسته نشه. خرد نشه. احترام ها خورمت ها خورد نشه. یک سیر قوانین خدا گذاشته حس حق حقوقی بر سر گردن مسلمان گذاشته تو اینکه مسلمان از رده, از رده انسانیتش خارج نشه دزدی نکن سر رحمت انجام بده احترام پدر و مادرتو حفظ کن برای چی برای مصلحت ماها ماها فردا پدر مادر میشین مصلحت ما هست ما گرد دقت بکنیم به این مسائل پی میبریم به اینکه خداوندی که این دین را تشریع کرده خداوند با حکمتی بوده یا به اون مسائلی که در قرآن ازش یاد کرده و ماها الان داریم بهش پی میبریم که قبلا بهش مثال زدیم بحث جنین تخ... لخته خون میشه بعد گوش میشه بعد استخون میشه بعد از اون استخون دوباره گوش میشه چون مکسون العظام لحما، سونوگرافی که نبوده اون روزا که بدونن کالبوسکی هم که نبوده که بدونن که از جسد بتونن حفظ بکنن که بیدونن که این جنین در چه مراحلی اطیم میکنه خب کی از 1400 سال قبل این ادله شرعی که دلالت بر وحدانیت خداوند و یکتایی یکتا بودنش در علم در, در اون علمی که از ما مخفی مونده و ما توانشو نداشتیم کی هست که ابلاغ کرده برسودو علیه و السلام جز خداوند یکتا که داره ما را الزام میکنه به علمش در قرآن که او را بپستید از علمهایی هایی که خداوند در قرآن گفته و ما ما ما را با توجه به آن الزام کرده زیاده. اون علمهایی هایی که خداوند در آورده بر وحدانیتش اینکه یک تست. زیاده مثل چرخش زمین به دور خودش چرخش خورشید هنوز فیزیک شناسان موندم که خورشید چطور میشرخه؟ در سطا چطور حرکت میکنه؟ و شمس تجري و ي هنوز موندن توش که چطور با علم فیزیک هنوز موندن توش چطور با علم فیزیک ثابت بکنن که خورشیدم دا مداری داره که داره میچرخه حالا خورشید داره چی میچرخه میدونن که چرخشی هست غیر ممکنه که ایستاده باشه خورشید چون اگر خورشید ایستاده باشه شعله میخوابه باید یک سرعتی خیلی زیاد داشته باشه که این سرعتش و رفت بشه و بلند بشه و راحتم هم دیده میشه با تلسکوپای های دقیق که شعله ها دارن جهت میابن خب جلالت باید جریان داره دیگه وقتی که شعله ها داره حرکت میکنه خب چطور در چه مداری دور چی میشرقه توش موندن ضعف ماست از لحاظ نظری یه چیزه که میبینم ولی که تطبیقیش بخوام بیان با اون نظریات ثابتش بکنن خدا خبر داده این چیز واقعیته یقین داشته باشید خورشید حرکت میکنه یقین داشته باشید شد نداشته باشید مثل همونطور که علم امروزی ثابت کرد که ماه دور خورشید میچرخیم و ما قبلنم بهش رسیدی بودیم در قرآن اومده الان اینم بازم به نتیجه خواهیم رسید بعدن شاید سال دیگر، شاید ده ها سال دیگه، بین این نتیجه برسن که خورشید هم داره یک مداری داره، داره دور دار دار دار دار دار اون می‌چرخه. نه تنها در قرآن بحث چرخش خورشید اومده، بلکه در سنت خورشید میره و تا زیر عرش سجده بکنه زیر عرش، چطور؟ الله اعلم. ما نمی‌دیم، ما فقط می‌دونیم که کلام رسول الله صلی الله علیه و بر حقه. خب پس ادلهای که در قرآن اومده و خارج از قرآن در آفرینش هست از های کونی و شرعی ما را الزام میکنه به اینکه خداوند را بپرستیم و اینجا هم وقتی که ما در طب سوال میشیم از سروردهارمون سوالمون از خداشناسی سوالی سآل... که میشیم از خداشناسی نیست بلکه از خداپرستی از لوازم این معرفت و شناخت لازمه شناخت خداوند لازمه شیه پرستش خدا خالقه، رازقه، مدبره و اعتراف به این فایض بندی به با دین شهاد است. کلا جلسه سیبادش را شهر اشعیه داد و دین معرفت قال فقل معرفت العبد ربه و دین او و صلی الله علیه و سلم. انشاء الله بین روزی جلسه رفتیم. و آخر عوالی الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد آن دارم محمد